همون وقت ها بود که برای اولین بار سریا و جواد را دیدم. مدتی بود حرفهای محمد و امیر و تعریف هایی که از خاطراتشان با جواد و گردش های مشترکشان میکردند و مقید بودن هر دوشان به اینکه در هر شرایطی هفته یک بار با هم کوه بروند کنجکاوم کرده بود که آنها را ببینم. دوست داشتم بدانم جواد کیست و شخصیتش چگونه است که اینقدر دوستش دارند. و برای همین وقتی محمد گفت: شب جمعه خونه جواد اینها دعوت داریم خوشحال شدم. به یاد دارم آنشب از دیدن خانه کوچک و قدیمی آنها که توی یکی از محله های نزدیک بازار بود و خود جواد که با تصورات من خیلی فرق داشت چقدر جا خورده بودم. جواد پسری لاغر با قدی متوسط و چهرههای معمولی بود که در مقابل امیر و محمد، با آن قطعای بلند خیلی نقش تر هم به چشم میآمد و در نگاه اول من از اینکه که این دوست خیلی عزیز برای محمد و امیر این قدر با تصوراتم متفاوت است حیرت کردم. منتها برخورد و لحن جواد آن قدر مهربان و گرم بود که زود آدم را تحت تأثیر قرار میداد. محمد و جواد و امیر با سر و صدا و شادمانی مشغول سلام و احول پرسی بودند که خواهرش هم برای استقبال تا دم ایوان آمد و من برای اولین بار سرعیه را دیدم. در مقابل خانه ما و خانه هاجاقا خانه آنها مثل قوتی کبریت بود ولی برخورد گرم و روی باز آنها فضا را عوض می کرد. طوری که آدم به سرعت محیط و اطراف را فراموش می‌کرد. سورایا هم مثل جواد خوش زبان و خوش برخورد بود. صورتش بدون اینکه زیبا باشد دوست داشتنی بود و آهنگ قشنگ صدایش آدم را مجذوب می کرد. با اینکه از من ریزنقش تر بود تسلطش در کلام و برخورد و اعتماد به نفسی که در رفتارش بود باعث شد که ناخداگاه احساس کنم خیلی از من بزرگتر است. در حالی که سورایا فقط دو سال از من بزرگتر بود. به هر حال وارد راهروی باریکی شدیم که کنارش اتاقی بود که ما را به آن راه نمایی کردند. زیر پله ها آشپزخانه بود و رو راه پله های طبقه بالا. دو چیز خانه در همان ابتدا آدم را مبهوت میکرد، یکی کوچکی بیش از اندازه و یکی تمیزی. انگار همه جا برق میزد. توی اتاق روی زیراندازی سفید خانومی موسین با صورتی بسیار مهربان به زحمت از جا بلند شد و مرا چنان با محبت و گرمی بغل کرد و بوسید که ناخداگاه مهرش در دلم نشست. مرتب می گفت ماشالله هزار ماشاءالله. مادر محمد اشالله خوشبخت باشیم. اشالله خیر هم را ببینین و به پای هم پیرشین بی خود نبود ترک ما رو کرده بودی آدم عروس به این قشنگی داشته باشه بایدم سراغ از کسی نگیره محمد خندان با صمیمیت و مهری فوقالعاده که نشان از آشنایی دیرینش داشت گفت به خود زهرا خانوم به خاطر زنگ گرفتن نبود گرفتار بودم ولی جواد شاهده، همیشه جویای احوالتون هستم جواد با لحنی شوخ گفت راست میگه مامان هر جمعه که با هزار زور میاد کو، حال شما رو هم میپرسه. محمد خواست جواب بدهد که زهرا خانم با محبتی مادرانه گفت. هرس نخور مادر، بازم رحمت به بشیر تو. بذار اون دوتا زن بگیرن اگه اسم بقیه هم یادشون اومد اون وقت درسته. با اینکه از زبان امیر و محمد خیلی از خاطرات جمع نفرهشان شنیده بودم، ولی باز هم سمیمیت زیادی که در رفتارشان موج می‌زد، برایم چیزی تازه و نو بود. من جایی ندیده بودم که محمد اینقدر راحت و صمیمی باشد. خصلت همیشگی امیر شیطنت و زودجوشی بود ولی در مورد محمد نه. موقع شام که دیدم محمد هم با امیر برای کمک به انداختن صفر بلند شد، تعجبم بیشتر شد. آنها مدام از خاطراتشان می گفتند و می خندیدند و گهگاه سرعیو هم با آنها همراه می شد و من که تا حالا محمد را اینقدر خوشحال و سرحال در جمعی ندیده بودم سعی میکردم کردم رفتارم عادی باشد وقتی خواستم برای کمک بلند شوم سرعیو و زهر و خانم مانع شدند و گفتند حالا این دفعه نه، این بار پاگوش هست اشالا بند جواد هم به زور محمد را نشاند و گفت این بار به خاطر محناس خانوم معافی. محمد قبول نمیکرد کرد که زهر خانم پادرمیانی کرد و گفت بشین مادر، دیکه بالا و پایین نزاشتن. بشین پیش خانومت، هنوز با ما آشنا نشده، قریبی می کنه. و بعد در حالی که حواسش به من بود ادامه داد. محمد آقا خدا میدونه چقدر دلم میخواست عروست را ببینم. حالا از سر شب آنقدر خوشحالم که خانوی به این برازندگی نصیبت شده که توی پوستم نمی گنجم. الهی شکر هر دوتون شانس آوردین. و رو به من اضافه کرد. محمد آقام مثل جوادم میمونه. ایشالا ایشاله خدا عمر با عزت بهش بده که فقط خدا میدونه این جوان چقدر آقاست. صدای جواد که سر سفره دعوتمان میکرد حرف زهرا خانم را نیمه تمام گذاشت. جواد همانطور که دیست پلو را جلوی ما نگه داشته بود، به شوخی به سریا گفت. سرعیه میخواستی خواستی زیاد درست کنی. محمد اون وقتا که کم می خورد آشق بود. حالا دیگه خیالش راحت شده اشتهاش باز شده. با خود گفتم پس امیر و محمد قبلا هم اینجا غذا خوردند، که جواب سریا باز بر تعجبم اضافه کرد که با طعنه گفت: مگه پسر حاجام عاشق میشه؟ محمد بدون اینکه ناراحت شود با شوخی جواب داد؟ مگه پسر حاجا آدم نیستن؟ سریا با خنده گفت ببین جواد شاهد باش دوباره خود محمد آقا داره حرف توی دهن من میذاره ها؟ من کی گفتم آدم نیستن منظورم این بود که پسرهاجی ها معمولاً سرشون توی حساب و کتاب و تجارت و حساب یک قرون دوزاره. حساب یک قرون دوزار کجا و عشق و عاشقی کجا؟ محمد باز هم خندان گفت خوب شاید اون مال های خالص باشه. من ناخالصی دارم. امیر فوری گفت اه اون خالص ها هم دل دارن. سنگ که نیستن. سریا در جواب در حالی که سعی می کرد مستقیم به امیر نگاه نکند گفت اون که بله منتها توی عشق اونها حساب بانکی پدر معشوق هاست که حرف اول رو اگه نزنه لاقل نصف بیشتر حرف رو میزنه. امیر خواست دفاع کند که زهر خانم با دل خوری گفت گفتم شوخی هم می کنید حرمت خونه خدا رو نگه داریم. جواد گفت مادر جون، ما منظورمون از حاجی اونایی که رفتن مکه نیست که؟ منظورمون بچه و چون معمولا اونا بازاری هستن؟ با انگشت و چشم و ابرو اشارهی خنده دار به محمد و امیر کرد. و پدراشون حاجی اینو میگیم؟ مادر من چرا حرس بی خود میخوری؟ معلوم بود زهر خانوم جوشاورده، برای همین بقیه دیگه دنبال شوخی را نگرفتند. کنایه‌های آنها برایم تقریباً بی‌مفهوم بود. میخندیدم، ولی از اینکه سر در نمی‌آوردم منظورشان چیست و در ضمن بیشتر از اینکه میدیدم محمد با دختری دیگر اینقدر راحت حرف میزند، ناراضی بودم. لبخند میزدم، خود را خوشحال نشان میدادم، ولی در باطن کلافه بودم. مخصوصاً در برابر سریا که اینقدر راحت حرف میزد بحث میکرد و جواب میداد و به نظر میآمد که اطلاعات وسیعی دارد، خودم را دست و پاچلوفتی و معذب احساس میکردم. اعتماد به نفس سریا و تسلطش بر محیط و اطرافیان و نگاه های تحسین و تایید دیگران برای من با آن ذهن خام و افکار بچگانه رنجآور بود. مثل همه آدمهای ناتوان که وقتی از چیزی سر در نمیآورند سعی میکنند نفیش کنند، من هم در وجودم دنبال بهانه‌ای برای پس زدن و نادیده گرفتن محاسن سورایا میگشتم و از دستش هرسم میگرفت. آن شب وقتی دیر وقت از خانه آنها برمیگشتیم، امیر و محمد سر حال خوشحال حرف میزدند و میخندیدند و از خانواده جواد تعریف میکردند. ولی من توی فکر بودم. نخواسته اخمهایم در هم رفته بود. و در سکوت به حرفهایشان گوش می دادم. محمد آنقدر در حال و هوای خودش غرق بود که برای اولین بار متوجه حال من نشد و همان شب بود که برخلاف انتظارم که توی ذهنم همیشه فکر می کردم امیر به زری علاقه دارد از حال و هوا و نگاه های امیر با تردید و دودلی حس کردم که نگاه های پر از تحسین امیر به سریا رنگی از محبت دارد ولی نمیخواستم قبول کنم. یعنی باورم نمیشد امیر به دختری در شرایط سریا دلبسته باشد. آن شب همه چیز برایم عجیب بود و غیرمنتظره. موقع خواب در حالی که سعی میکردم لحن صحبتم معمولی باشد گفتم: فکر نمیکردم اینقدر با جوادینا سمیمی باشی. محمد در حالی که معلوم بود هنوز فکرش مشغول است گفت: من که برایت ازش تعریف کرده بودم. تو از جواد گفتی، نه از خانوادش. راستی اصلا تو چطوری با جواد دوست شدی؟ قصهش طولانیه. حالا به خواب خسته ای. بعدم برات میگم. نه، خوابم نمیاد بگو. بالاخره با اصرار من آرام و شمرده انگار در خیال خودش قرق شد و مثل یک قصه گو شروع کرد. من جوادینا رو خیلی ساله که می شنسم. تقریبا از دوازده سالگیم. نمیدونم یادت هست ما تابستونا با بابا می رفتیم بازار؟ اون موقع جواد سیزده سالش بود و همراه پدرش آقا اصدالله می بازار. آقا اصدالله باربر بود. با اون جسه لاغر و ضعیف فرش ها رو کل میگرفت و این طرف و اون طرف می برد. آقاجون جون به خاطر چشم مدل پاکیش خیلی آقا دلار رو دوست داشت. من مدتها اصلا جواد رو نمیدیدم یعنی منظورم اینه که چون مثلا پسر صاحب پجره بودم به جواد مثل اشیای مغازه نگاه میکردم. مثل فرش های آقاجون یادم هر روز ظهر آقا جون از ما می پرسید که ناهار چه میخوریم؟ بعد سفارش غذا میداد و یکی رو می فرستاد غذا بگیره جواد و باباش ظهر که میشد می رفتن پشت مغازه غذاشون رو می خوردن. باورت میشه من حتی یک بار هم به فکرم نرسیده بود اونو نهار چی می یک روز آقا جون نزدیک ظهر با مهدی رفت دنبال یک کاری و خیلی دیر کرد. سر ظهر بود و من گرسنه. آقا اصدالله پرسید؟ آقا چی نهار بگیرم؟ گفتم نمی دونم باید آقا جون بیاد؟ آقا الله با مهربونی گفت ما یک لقمه ناهار ناقابل همراهمون هست شما فرماین تا چی بیاد قبول نکردم ولی دلم برای نان خالی هم ضعف میرفت. اونها مثل هر روز رفتن و بغچهشون رو باز کردند و من حیرون پشت میز آقا جون منتظر نشستم چند دقیقه بعد جواد با خجالت اومد و گفت محمد آقا شاید اومدن حاجاغا طول بکشه یک لقمه از این بخورین ته دلتون رو بگیره آنقدر مهربون و با صفا گفت که رویم نشد قبول نکنم باورت نمیشه مهناز دوتا سیب زمینی پخته بود که رویش گل پر ریخته بودن روی یک تکه نون بعد از صبح تا ظهر که جواد با اون جسم ریزمیزش کار کرده بود ناهارش این بود از همه عجیبتر این بود که اون نون و سیبزمینی به دهن من از چلو کباب هر روز خوشمزه بود. اینم از خاصیت های است نگیست که من تا اون روز نمی این اولین جرقه انسانیت بود که جواد باعث شد توی ذهن من زده بشه. فردای اون روز که آقا جون فرستاد غذا گرفتن، ناخداگاه یاد کار دیروز جواد افتادم و این دفعه من پاشدم، غذامو بردم پیش جواد و باباش. من با تعجب گفتم یعنی آقا جون به این مهربونی یک تعارف به اونا نمی کرد؟ محمد با خالی گفت ای بابا مهناز تو باید باشی و ببینی تا بفهمی توی محیط کار و بازر و روابط آدمها چهخبره؟ چه خبره آقا جون تازه در فهم و شعور سرآمد شکم سیرهاست آقا جون کمک می کرد. خرج دوا و درمان زنش رو میداد. کمک کرد تا آقا الله خونه بخره. واسه درس و مدرسه بچه هاش هم همین طور ولی نبیشه. میدونی من یه چیزی از آدم فهمیدم. اونم اینه که شکم که سیر میشه، چشما کور میشه و گوشا کر. و میزان این چری و کوری ارتباط مستقیم با دوشیز داره. یکی میزان سیری، دیگری انسانیت طرف. منظورمو میفهمی؟ ببین مثلا همین بابای من و تو که جز خوبها و انسانهای شریف و با رحم هستند اندازه ی همه ی توانشون که کمک نمی‌کنن اگر همه ی داراها اندازه تواناییشون کمک می‌کردن به خدا دیگه آقا اسدالله و زهرا خانومی پیدا نمی‌شد یا آدم مستحق و محتاجی بیشتر داراها یا به قول ثریا ها، هاجاقاها بستگی به وجدانشون یک سخفی برای کمک در نظر گرفتن. یکی آنقدر میده که فقط وجدانش راضی باشه. دیگه کاری نداره که گیرهی از کار کسی باز میشه یا نه. یکی از روی چشم و همچشمی، یکی برای اسم در کردن، بعضیها هم هر وقت میلشون بکشه و دلشون بخواد. و خلاصه این وسط، کسی که بخواد با تمام توان و برای ازمیان برداشتن مشکل کار کنه، انگشت شماره. خاصیت وجودی آدم فراموشیه و اولین چیزی هم که آدم ها فراموش میکنن همون نیاز و سختی و درمونگیشونه برای همینه که با همه سختی که هر کس ممکنه توی زندگیش بکشه تا به بینازی برسه اولین چیزی هم که فراموش میکنه همون حال گذشتهی خودشه و حال فعلی عدادی زیادی از مردم اینه که درک و هم دردی رو از آدمها می هرقدر نیازمندی و تنگنای زندگی آدم و هو شیار میکنه باعث کوری ذهن و کرختیش میشه. تو الان این سرعگه رو ببین، مگه چند سالشه دختری به این سن فکر می چرا اینقدر ذهنش باز و فهمیده است؟ من که حسادت به دلم نش میزد با کنایه گفتم. به خاطر تهنه هاش میگی فهمیده است؟ محمد انگار منظور کنایه آمیزم را نفهمیده باشد فوری گفت. اون تعنه نمیزنه. حقایقی رو که توی زندگیش فهمیده به شوخی بیان میکنه. تو خودتو جای اون بذار. ببین، سرعی وقتی کوچیک بوده همراه مادرش بوده که توی خونه های مردم کار میکرده. فرق دارا و ندار، نیاز و بی نیازی، خواستن و نداشتن رو با تمام وجود حس کرده و شناخته. این میون شاید معدودی انسان های مهربون و فهمیده رو هم دیده ولی اکثریت همون فراموشکار بودن که برایت گفتم. این حرفاش هم برداشت های تلخیست که اون از زندگی داشته. نمیدانم چرا تعریف‌های محمد از او مثل خاری به قلبم فرو میرفت و احساسی ناخوشایند به قلبم چنگ میزد. محمد ادامه داد: خلاصه دوستی من و جواد کم کم دار شد جواد دریچهی بود رو به دنیایی که من ازش بیخبر بودم شنیدن حسنت و آرزوهای جواد و مقایسه زندگی اون با خودم و جوان مردی که از آقا اصدالله و خود جواد و مادرش دیدم باعث علاقه به اونها شد تا الان که میبینی و چون جواد استعداد زیادی برای درس خوندن داشت با همدیگه درس خوندن هم باعث نزدیکی بیشترمون شد. بیچاره آقا اصدالله آرزویش این بود جواد به جایی برسه ولی درست همون سالی که جواد دانشگاه قبول شد آقا اصدالله ریهایش عفونی شد و فوت کرد. خدا رحمتش کنه. خدا رو شکر زهر خانوم مونده که یک نفس راحت بکشه و اقل یک خورده از آرزوهایش رو برآورده ببینه مخصوصاً حاله که سریّا هم دانشگاه میره. الان روزهای خوشبختی و راحتی اوناست که دیگه آقا اسدالله نیست. حرفهایش برایم مثل داستانی قشنگ بود. جواد و مادرش و آقا اسدالله را دوست داشتم. ولی در مورد سریا احمقانه فکر میکردم. کاش جواد خواهر نداشت یا دستکم چنین خواهری نداشت. آدم وقتی جوان است و خام و مثل من احمق فکر می کند کامل بودن یکی دلیل ناقص بودن خودش است و همین فکر باعث می شد نظر خوبی به سره نداشته باشم. احساس کردم محمد منتظر است حرفی بزنم. پرسیدم پس تو چرا برای عقدمون دعوتشون نکردی؟ خب الان جوادین ها خیلی سعی کردن از گذشتشون دور بشن. و خودشون رو بالا بکشن حق دارن که دوست نداشته باشن با کسانی که شاید اونها رو به چشم قدیم نگاه میکنن رفت آمد داشته باشن البته تا حالا هیچ وقت جواد مستقیم اینو نگفته ولی خودم خوب میشناسمش برای عقد هم دعوتشون کردم اونها مرزی زهر خانم رو بهانه آوردن منم اصرار نکردم همین من که فکر سرعی رهایم نمیکرد. یک حبی مقدمه گفتم چه خواهر خوبی داره خیلی راحت گفت آره واقعا من مثل زهری دوستش دارم خیلی دختر ماهیه در حالی که سعی می کردم لحنم معمولی باشد گفتم ماه بودنش به خاطر آزر جوابی شه. یک دفعه از جا پرید نیم خیز شد و در حالی که توی تاریکی صورتش را نزدیک چشمهایم آورده بود گفت با سوی اون سر کوچولو چه خبره با حرس گفتم سر من کوچولو نیست و پشتم را به او کردم ولی صدای رعد و برق یک دفعه چنان مرا از جا پراند که بلافاصله برگشتم و خود را توی بغلش قایم کردم خندان گفت <تصفيق> آها اینم جریمت که دیگه بیخودی بر اخلاقی نکنی. آسمون جای من تنبیهت کرد. آنقدر خسته و خوابالو بودم و در ذهن فکرم مشغول بود که ترجیح دادم قضیه را با خنده تمام کنم. آن شب گذشت. اما جرقه فکری پوچ توی ذهنم زده شده بود. بدون اینکه خودم بدانم که روزی این جرقه آتشی خواهد شد. به دامن خرمن هستی و زندگی